بر دیگران رسول علیه السلام فرمود که الله تعالی یک فضیلت خاصی به من عنایت کرده است که من بر انبیا دیگر با این این امتیازات منن که من بر انبیا دیگر دارم و ربیانو قال قلت انا الانبیا بالست به چیز خدا من بر انبیاء دیگر فضیلت داده است خود پیغمبر فرمودند اول اوتی تو و الکلم به من داده شده است کلمات بسیار جامعه کلمات مختصری از زبان من میان بیرون و دارای مفاهیم بسیار بزرگ جوامه الکلم اینه. کلمات مختصری از ذهن من میان بیرون لیکن اینها معانی بسیار بزرگی دارم این اولین فضیلت من دوم دو نصرت بر رو رو من تا یکمه بر دل دشمن می همین رو من دشمن مرعوب میکن نصرتو برود سه اوهلت لیالغنائی غنیمتها برای من حلال کرار در های قبل غنیمت حلال نبود غنیمت را بلاه آسمانی از بین نبود هر مال غنیمتی جمع می در میدان گذاشته می شود بلاه آسمانی او را نابود میکن شا جو علت لی الارض و مسجدان تمام کره خاکی برای من سجد در هر کره خاکی من و امت من سجد میکنیم معنی اگر مسجد نباشت زمین به شرط پاک باشت دیگر نجاستی در زمین نباشت اون محل نماز ہے خان محل نماز زمین محل نماز ہے، محله محل نماز این امتیاض را من دارم که امام دیگر نداشتا هر جا اونها نمیتونستن نماز بخان تو برای من کل کره خاکی محل سجد شکر برای امتی هم مسجد و هم تهور اگر آب ندیدی تیمون بزن دست بر زمین و بمان بر چهره بزن دست بر زمین و نه اینکه که خاکش کنی بلکه حتی بتکن و بمان بر دستها این تهوره برای بر جو علت الارض و مستدن و تهوره و با سرمود ارسل تو الخلق من برای تمام انسانها نبی پرستاده شده. همه انسانها موثفن که به رسالت من اعتراف و ختم ابی النبیون و سلسلی نبوت با من تمام شد. ختم انبیاء شده من. من آخر همه استم و مهر همه شش او شیش فزیلات او تیت جوامل کریم و سرتو بر رب و حلت لیالغنائیم جوهلت لیالارض و مستدا و تهورا و ارسلتو الى کافتن، الى الخلق کافتن و خودم بیا نبیون این شش زیلت من هستند که من بر دیگر انبیا دارم برای